اگه از به پرسی زندگی باور کنی خود رو دل نمیگیره باید بس کنی پیشت باشش کنی تو آغوش بگیریش ماچش کنی میگه زندگی قشنگ مگه چی جوره حاجی فردای تاریکی همه چی نوره احمق اون که فکر میکنه همه چی پوله همه چی جوره به که همه چی کوله با نور ماه راه میشرف تو جاده های تاریک میتونی مردومه بمونی زنده لابلای تاریخ دست به دست هم بدیم اورایش به بازی جای جنگ مس هم آرامش به بسازم بی تلنگ و واژه ها بی تنفو هر قدم که برمیداری داشته هدفو، سب نکنی بفهمی فهمی میگیره باسط دلش که اینجا جننم خوب و تو باید باشی بهشتی مقااب و بنداز دور تو باید خودت باشی بشککننی بخوری زمین باز رو پای خودت پاشی یه ها بوی نمیسته میذره مثل برق و باد صاف باشی هر دلی میکنه فردا از تو یاد این اینجا اصلی زندگی یه نباشه چیپه کجا رسید اون که طلاتاتمو بهانه می کرد زیاددا اونا کلی تا به سوواه میدن تو جادارامشه تا میشهوار زیرت رسیدن خوبه یا تم حرکت و چشیدن واسه من تصمیم مهمتر از کلیش هست فهمیدم ترجیح جا کسلی چپیدن به جنگم با سلولم تا آزادی رو این جاشننی زندگیه زندگی نباشه چیپا. کجا رسیدون که طلا تو و بهانه می زیادن اونو کلی رو به شواله میدن تو جاده آرامش تا میشه اووازی راه. رسیدن خوبه یا تم حرکت تو چشیدنواسه من تصمیم مهمتر از یه کلیش هست فهمیدم ترجیح تا توکسلی چپیدن به با سلولم تا آزایم و به و من از, و از من به دابخند و کلی ورقه که مجموعش اش دفتر چه اوم میده درست نی بمونی تو سر فصل شمری میدرخش پشت هر صفه خورشید نگاه دور دست خوبه اما سود تر اون که حالشو تو همین روزا خوب کرد این به منای گذاشتن حقمون نه ولی به منای پشت هر تاریکی نور هر چرا این ربیه دامدار همیشه ولی چش هم زاری میرسه نتیجه شاد اولش شمینه ولی واسه من یعنی رسیدن به ته قضیه بهترین من است منی نگاه واسه کنی مهم نی چی زمینه همین که تلبیده دمی برسه عریه ردیفه کمی انگیزه بریزیم تو هر دقیقه ببینیم میده نویداینده ای که بعیده بالایی یعنی پشت حصار را حتی ندیده. آزادی ولی مرد حسابی اگه بشی به اسیر خواب نبیداری یعنی حقص نفس هم میده. بگیری کم و ندید یه زندگی یه نباشه چیپ کجا رسیدون که طلا تو مو بهانه میکه زیادن اونا رو به شواله میدن تو جاده آرامش تو میشه عوارضی ره رسیدن خوبه یو تم حرکت تو چشیدن بوس من تصمیم مهمتر از یه کلیشه است من میدم ترجیحا تو کسلی چپیدن بجنگم با سلولم تو آزادیمو ببین اگه از من بپرسی که همه چی تو سرته مثبت شد که منفی زندگی تنشه من جواب گرفتم من قلبم ی عمری پشت تاریکی نور اگه از من همه چی نگاه من تو بوده همین انتخاب تو اون و انتخاب من این که خونه بسازم و آجرای دلم با هر کی بود بین من و شما ها قریب تو شهر نور پر پنجره نمون میشه با امید جلوی لختی یا دووم بیاری ته شب تا از اون بیداری تا بشه برات یه روز این سختی یا تموم اینا فریده ذهنیه که بازه سازش با هر اونچه که تو دنیامون ساخته یه ترنم خوشگوش دلنوازه صدای پای سانی اون که نشنیده باخته من شنیدم تو هم گوشاتو بسبار به صدای قلبت با همه کم و کاستش این زندگی به زعم من یعنی زیبایی یعنی توان جنگ با سر رسیدن به داشتنیه زندگیه نباشه چیپم کجا رسیدون که تلا تومو بحانه میکرم زیادن اونا که لیچا رو به شواله میدن تو جاده آرامش تو تا میشه عوارزی ره رسیدن خوبه یا تمه حرکت و چشیدن واسه من تصمیم مهمتر از کلیش هست فهمیدم ترجیح جا تو که سلیچه پیدن به جنگ با سلولم تا آزادیم ببینم